ساعت ده صبح روز بعد در اختخاب خواب تا آن ساعت رنگ پریده دلواپس بیخوابی کشیده از اتاقم بیرون نیامدم مادرم آمد کنار تخت خوابم نشست میخواست بداند که چرا ناراحت هستم آخ، چقدر خوب بود اگر پدرم را تبعید نمی‌کردند با او عختر بودم اقلا این لذت را داشتم که سرم را روی شانهش بگذارم و گریه کنم و او آنقدر فهم داشت که دلیل قمق مرا را از من نپرسد. اما مادرم از آن امودها بود که تصور میکرد که همه عشق فقط در کتاب حافظ باید خوانده شود. او هجر و سال را نمی برایش در عالم خارج جز همین زندگی با پدرم چیزی وجود نداشت. دارم کم حرف بود و از براجی بیزار اما مادرم نمی توانست ادراک کند که گاهی انسان احتیاج دارد که لب بندد و دم نزند ساعت دهانیم تلفن صدا کرد از اتاقم با همان پیراهن خوابی که تنم بود پریدم به سرسرای طبقه بالا تلفن آنجا بود دیگر صداش را می شنختم مثل همیشه آرام و متین و سنگین صحبت کرد برخلاف همیشه احوال من رو پرسید مرا شما خطاب کرد پس از گفتگوهای عادی پرسید تشریف می اینجا؟ گفتم نمیدانم. پرسید مگر قرار نگذاشتیم؟ گفتم چرا؟ اما امروز من وقت ندارم حالم هم خوب نیست میخواستم با او با همان زبانی صحبت کنم که با دیگران مرسوم بود اما نشد این آدم را مزهور کرده بود گفت فرنگیس باید بیایی گفتم آخر شاید خوب نباشد گفت حتما خوب است گفتم شاید صلاح نباشد اینجا دیگر سوز شد لحظه صدایی نیامد بعد از چند ثانیه گفت خودتان میدانید شاید حق شماست شاید صلاح نباشد من دیگر جوابی ندادم لحظه مکس کرد خب خداحافظ برای او تمام شد یقین کردم که دیگر برای او تمام شد چه حالتی به او پس از این گفتگو با تلفن دست داد از کجا می دانم او که هیچ وقت حرف نمی زد آنچه توانستم از او در بیاورم این بود که به کار پرداخته بود شاید همان روز تصمیم گرفت که صورت مرا بسازد با این چشم هایی که الان ساخته یاده حرفش افتادم که گفت آرزوی من این است که صورت تو را بکشم و تو تو را نشناسم چگونه میتوانم شبیه تو را بسازم. پناهگاه او کار و زحمت بود. هر جا شکست میخورد به آستان کار پناه بی برد و آرامش خود را به دست می آورد. این بزرگترین خوشبختی است که زندگی نصیب انسانی می کند اما این بار شاید تحمل بیشتری لازم بود. کمی با رنگ و قلم و بازی کرده بود به نظرش آمده بود که ازش ساخته نیست کمی با رنگ و قلمو بازی کرده بود و آرنجش را روی زانونش گذاشته بود و سرش را به دستش تکیه داده بود چند دقیقه در فکر فرو رفت و چنین نتیجه گرفته بود که حق با اوست، صلاح هیچ کدام نیست آنگاه از خودش پرسیده بود پس چشمهایش چه می گفتند؟ تمام این تعمل و تعمق فقط نیم ساعت طول کشید بعد به کارش پرداخت. این آنجوری بود که من توانستم ازش در بیاورم اما واقعیت از این خیلی شدید تر بود او که همه چیز خود را به همه کس نمیگفت به من هم نگفت این تصویری که الان در برابر شماست خلاف آنچه را که من میدانستم حکایت میکند این مرد سه سال تمام در تبعید به خیال واهی به تصوری که از من به خطا کسب کرده بود زجر کشید. سه سال پس از تبعید در کلات این پرده را ساخت است و این تنها اثری است که پس از رفتن از تهران و در دوران آوارگی ساخته. پس با همین نیم ساعت تفکر تصمیمش را نگرفت و مرا ترک نگفت. من خیال میکردم که نیم ساعت فکر کرد و دیگر موضوعی برایش وجود نداشت